پانزدهم کارتان را بازمهندسی کنید این یکی از ترین و مهمترین راه‌ها برای کاهش زمان انرژی و هزینه و به نتیجه رساندن یک کاره بیشتر فرایندهای کاری و مشاغل امروز کارهای چند وظیفه‌ای و چند مرحلهیه اونها از یک سری چیزها تشکیل میشن که باید از اول تا آخر انجام بگیرند تا کار تمام بشه اونطور که معلوم شده در خیلی از کارها به مرور زمان تعداد زیادی اجزای جای کم بازده جا گرفته که کسی به اونها توجه نمیکنه. خیلی از مراحل کار یا غیر ضروری یا کاملا بیهوده هستند. اما به هر حال میزان زمانی که انجام کار طول میکشه رو اضافه میکنه. ولی شما قرار نیست اینطور عمل کنید. هر کار بزرگی که باید انجام بدید رو بردارید و تمام مراحل لازم برای انجام اون رو از ایده ای اولیه تا اتمام کار بنویسید. وقتی فهرست همه مطالب رو داشتید هدفتون رو این بگذارید که در همون بار اولی که فهرست رو بازبینی کنید، تعداد مراحل رو تا 30 درصد کاهش بدید اگه خلاقیتتون رو به کار بگیرید این تقریباً همیشه عملی است به دنبال راه باشید که چند مرحله رو یکی کنه به دنبال هایی باشید که کارهای متفاوتی که یک نفر انجام ده رو یکی کنید تا با هم انجام بشن دنبال راهی باشید تا که دیگه لازم نیستند رو کاهش بدید متوقف سازید یا هست کنید؟ همیشه بپرسید چرا اون رو به این روش انجام میدم؟ و آیا میتونه روش بهتریم باشه؟ تواناییتون در ساده سازی و کارآمد کردن زندگی و کارتون برای اینکه که کارای بیشتری رو در مدت زمان کمتر به انجام برسونید یک کلید اصلی دو برابر کردن کاراییتونه